مرحوم آیت تلاشون پقیه آمولی که خب یکی از علمای بزرگ شیعه است. خب زمانی که گفت من حتی دروس طلبگی تی کردم به درجه اجتهاد رسیدم تو مسائل معقولم در حد استاد اسفار شدم مسجد مجد تهران که پیش نماز بوده در زمان خودشون صبا درس فقه اصول می همه علما می اومدن پای درس فقه اصولم می اسرا اسفار میگفتم. اونایی که علاقمند به مباحث فلسفی بودن پای درس اصفار من می اومدن ولی می دیدم یه دقدقه درونی دارم آرام نیستم اینا رها کردم و رفتم نجف و مفصل قبلا گفتم نمیخوام بگم پای درس ها جارزی های اراقی، مرحوم جواد رضایی همدانی پای درس اینا نشستم و چیو باز دیدم اون آرامش که می خوام پیدا کنم پیدا نکردم تا پای درس مرحوم مست علی قاضی رسیدم گفت دیدم گم شدهمو پیدا کردم تا آخر عمر مرحوم قاضی موندم و پای درسش بعد میگه یه چیزی برای من سوال بود خودشون نوشتند مرحوم های قاضی وادیو سلام زیاد میرفت تو قبر زیاد مینشست خیلی وقتا تو قبرستان قدم میزد یا یه گوشه مینشست قبر رو نگاه میکرد گفت برای من سوال بود که مرحوم های قاضی چرا اینقدر میره قبرستان روم نمیشد سوال کنم یه زمستانی که ما نجفان بودیم یه سرمای اومد ما طبق عادتی که تو ایران کرسی داشتیم منم که زندگی طلبگی رو دیدم یک کمی مشکله اومدم یه حالت کرسی مانندی درست کردم که بهتر گرم بشم قرآن می‌خوندم روی کرسی خسته شدم قرآن رو گذاشتم رو کرسی و اومدم بخوابم به شک منو برداشت من پام و زیر کرسی دراز می‌کنم این جسارت به قرآن میشه یا نه بعد گفتم که قرآن که روی کرسیه من پام این زیره نه این جسارت نمیشه خوابیدم فردا که رفتیم سر درس مرحوم های قاضی فرمودن بدون مقدمه کسی پاش رو دراز کنه ولی زیر کرسی هم باشه قرآن روی کرسی این برای اونایی که میخوان تو این وادی بیان جسارت حساب میشه نماز میکنه فقه راयत میکنه راयत های کجا یه حرفای دیگه هست حالا میخویم اونجاها برسیم چی کار بکنیم اول وقت اذان میگن شوخی میکنیم نماز میکنیم از نظر فقهی گناه نکردیم اما شوخی گناه نه اول وقت ده دقیقه یه رو بیست دقیقه بجزره نماز بخونم خونم کردم نه ولی بی اینجاها نمیریسین میگه به من گفتن که کسی که پاشو دراز میکنه ولی و زیر کرسی قرآن روی کرسیه این جسارت حساب میشه میگه من دیدم داره به من میگه درس که تموم شد رفتم خدمتشون گفتم آقا از کجا فهمیدید که این موضوع برای من مطرح بود گفت از وقتی که تو قبرستون ها زیاد توقف کرده دیدم با یک اشاره هر دوتا موضوع منو جواب داد ببینید عزیزان ابتقاع وجه با انجام واجبات باید باشه با ترک محرمات باید باشه با انجام برخی از مستحبات باید باشه ولی چجوری اینا حرفه